شما جمع مشهدیم رحمتی کی آحمت در نهایت بخش آخر بخش روایاتی که استدلال به حدی خبر شده در روایات دیگر هم سکس بحث به همین مقدار جامده حدیث هکس پر کردیم رو ادامه به سلامت راه که ماستفاده از این مجموعه ای روایات چیه ارز کردیم اضافه بر این بحث خوب بود بحث دیگری را مفرق میکردن که اصولا معنای حجید در خبر چیه یعنی اگر این روایت را قبول بکنیم یک چه خبری حجت از اون احسانی احسان او که گفته حالا هاتون خواهد باشه یا نباشه دو اینکه که مهیار را چیه اون که به اول از کردیم که ادهی یعنی قبل متقبن چون تواتر اجمالی یا بعضی یا تواطر معنی قبول کردن و به موجود خبر صحیحه یعنی خبری است که عدل امامی نهبه بکنم وکن دی هم مثل مرحوم ناینی و استاد خبر مونسو قلبه استاد به قلیمه سیری اغلا خبر سبر و عالم. مرموم نایلی خبر موصوب و میشه احتمالا مرادیش ها همون خبر صغر باشه حالا میخواد عدل امامی باشه یا نباشه ظاهرم خب پس یه راجع به نتیجه اینها بود گذشت یه بخصم راجع به این بود که اصولا مئیار خودجی یعنی نقطه خودجی چیه برنای خودجی در اینجا چیه اینجا در این کتاب هایی که من دیدن متعرض نشدم، در که عرض اگر ما باشیم و این مجموعه روایات مفادش مختلفه از بعدی هاش در میاد که از در مومده استدلاع نایمی هم در حیقت به در میاد به این که محمد خود جید تکیمه کشف در از حال موالی نافل ما یروی هم ناسفاتون چون مفاد این حدیثان بارک به اصطلاح نفی شکه و نفی شک معنیش می اون کنی کاشف ناخذ آمه اگر این باشه این با تفریم کشف مرحوم نایینی و مرحوم استادهایی بودن مناسب تر لیکن ارز کرده این با از مفاد بعدی ها شاید جعل حکم در بیاد جعل بدر یا جعل مناسب به مثل حاضر دینی و دین و آباری اشاره کردن به کتاب و روایات فرمدن دینی خب این معناش این است که باید تبده با همون کتاب احکام الهی و با همون باشه و این معنیش جعل بدر یا جعل موسیق و این نکته رو در کلمات اینها نیامده که نکته چیه این دوتا نکته که کرده در آخر محصه روایات باز مطرح شد که یکیش رو گفتن اما دیگریش رو نگفتن و اما تحقیق مسئله ما عرض کردیم اون چی که ما در مجموعه این روایاتیم بیدیم در باب این که عمه علیه السلام ارجاء به رواد و حتی گفتیم بعضی از روایات مراد خود عمه مثل اللهم هم, هم خلاقایی رسیم مراد خود عمه باشه حدیث و و هم صادقه مراد خود عمه باشه این آقای که از حوالتی که اجتماع داده میشه که مراد خصوص امام باشه و ادهی از این روایات موردش در فوقها هست که خبره خبرند و معلوم نیست مثلا ارجاع به پتاب یونوس فرق به مجرد این که یونوس راویه ظاهرش اینه یونوز یونوس راوی و فقیهه یعنی روایات رو هم درست نکرده و هم درست انتخاب کرده و هم درست میشناسه و هم مطور اونها رو تشریف میده زرافت های فنی رو تشریف میده از به معلوم نیست به مجرد این که این شخص برداشته مثلا دویست داره وقت در این باورده در این کتاب ورده این نیست معلوم نیست اگر عربت حدیث فعله که با حاضر جالس زراره بنده فقیل و دقیقه ولی زاره اگر ما باشیم و مخازی قاعده چون به یک کلمات اجمالی اتفاق کنیم که بگیم بعد در اون صادره، ما باید یک مجموعه ای رو به نتیجه رو بگیریم که مناسب با سه بحث باشه، یکی که کلمات اثرت از لغت لغت بیش از مسئله کلامیز، ای که خویجت اولعه خبره که نه مسئله اصولی و فریام هست. یکی هم خبر واحد که مسئله اصولیه این روایات در از به خبر واحد و خبر سقه و خبر موضوع به نیست برداشت هم مروط به, به حجیز اهل خبر است ولی از اگر ما با شما بخواییم نتیجه گیری نهایی بکنیم این نتیجه گیری نهایی بین مجموع این های که آن گفتن با مشکل برکورد میکنه یعنی نمیتونه نتیجه واضحی رو بده این اشکال کلیه ما به این نحوه استدلاب بله بعد در این روایات همون شکل گذشت انگودش انصافاً ظهور در روایت داره خبر داره جمعه روایی درسته این قبول اگر به همون ها تمثلت بکنه به درد خبر واحد بخونه حتی همون حدیث نظره لاعن سمع مقالتی طبعه ها سمب بلغه ها این ظاهر به همون خبر وارد هم توی که شنیدی نه بکن تصرف و کم و زیاد نه انصافش این طوره اما شما موقعی در کل حساب بکنید در این کل مجموع همه اینها توی خبر نیستن این تصور بود که آران خیال میکردن تمام این روایات توی بحث و خبره نه همه اینا تو خبر نیستن حتی تو بعضیش که توضیح دادیم مورد قول وکیل هستن سقاطنا این وپلای ما من هم قول احره خبره این حجیت داره قول وکیل اون حجیت داره یه مجموعه ایست که این کوری باشه ولیزا نمیتونیم بگیم به این روایات به مجموعه این روایات الان میتونیم تمثل بکنیم برای حجیت تعبدی خبر یعنی قسم خاصی باید ما امام پرموده باشه مثلا خبر موسیقی به یا خبر سبب و توضیح هم ارز کردیم اون که به ذهن ما الان میاد این است که ما یک حجیت تعبدی خبر داریم دون این است که بگیم این خبر رو شارع تعبدن خجر کردیم خجر تعبدی خبر رو توضیح داریم داریم معیاره مثلا بگه خبر استقه هر نحوی باشه خجر داریم میخواد وصوب براتون بیا این داریم اینه حجیت تعبدیم یک حجیت ققلایی داریم اون که خود این مطلب خبر ثابت بشه با تجميع شواهد و قرائن اوغداری چون صادغان چند بار توضیحان فقط اشاره یک عدم حجیت داریم که antiserum شد مبنای امثال سید مرتضی اینه که خبر به ما هو خبر حجت نیست اونی که حجته حکم مستفاده ما حکم به حجت می‌دیم اما خود خبر به ما هو خبر به ما هو دلیل و دلیل لفظی خود این حجیت نداره این سه تا مرنه حالا باید شما از این روایات چی میخوایی اگر حجیت تعبدی بخواید که فرحاً از این روایات در میاد از مجموعی میخواییم به نحوه به استاد تواطر اجمالی اولا در سهلی از این روایات میار نیست مثلا میگه به زراره علیه که با حاضر جالس منوز چه نکتهی برای ارجاع به به خاطر بساقتشه به خاطر فقاهتشه یا فرض به مثلا به اشخاص خاصی یا کتاب های خاصی معین شده نظرا آباین را سمه مقال هستی فبقه ها سمه بلغ ها پیغمبر اون شخصی که صحبت را نهر میکنه سره باشه زابط باشه امامی باشه عادل باشه این مطاله را که پس معیاری در اینها ذکر نشده به قطعه چون معیار ذکر نشده؟ خوجیت تعبدی از این در نمید بله اگر ما یکی دو تا روایت که توش لفظ ثغه است عل امر ابن وحو ثغتا وسمعهما وحدثهما فانهما ثغتان المامونان اگر این ناظر به خبر باشه اگر و بگیم مثلا ببین که این دیگه روایت مثلا صحیح اعلی و ما به این غصوب ندال باب علم التواتر ایشون بله این حرب میشه اثبات خود تعبدی کرد برای یه ثقه مهمون هر که دیگه ثقه را مهمون باشه خبر رو رو مقبول بکنی ولو لمیوفید در الاسم ولو لمیوفید لکن خب ما اعرض کردیم ظاهرش مراد از امری و نهوم دست وکالته اصلا بحث خبر نیست ولی ذات همه که به اونها نمیشه پس بحث اول اسخرید بلوکی راجب اسم به احتمال اول که اثبات وجیه تعبده گفتیم لا اغل داره بیاد نقیه قول صالح صو بکنه به جز اون لا اغل ماشا روایت بگید مسیر مرتضی به خبر وجدید از مجموعه این روایات بفهم خبر وجیه این مطلب رو ما در اسنا روایات توضیح دادیم بعد در توابعش تراسه بردی از خواهف روایات در نوعی خبر حجته و همینطور هم بوده بین مسلمان ها آنان خبر رسول الله تبسط به عمومش می کرده این هست اما از همه روایات منوز در بیاد. ناسه اینجا به, به کتاب دادن شاید مثلا در اون جا اون کتاب روایاتی بوده که حرامن صحت ولیش موجود بوده یا؟ چون ما اون کتاب را کرده نمیدیدیم روایات اون کتاب را نمیدیدیم شاید مثلا روایتی بوده که متفران علیه بوده و متونش اجوائی بوده به قول مرموسی از مورسی متون رواید لذا انصافش به نظر من اگر تواتر اجمالی رو بخوایم وارد بشیم حتی نفی خود جیهت رو هم نمیتونیم با این برداریم یعنی نمیتونیم به این روایت تمسط بکنیم که بگیم خود خبر که بگیم خود نیست بگیم نه اجمالاً خود جد این هم نمی و بله ابتداعا اونی که بیشتر به ذهن میاد مجموعه رواید حجیت و رو ثابت بکنه انصافش اینه به اصطلاح ما مجموعه نگاه بیم مرزه بین حجیت و است و بین این که کسانی که منکرن نفیه منکری میشه لیکن قطعا ظهور در نفیه منکری هم نداره بگیم از مجموعه رواید درمیاد که مثلا مقاله سه دیمونزا باطله اونم در نمیاد اما بعید نیست منحیث مجموع انصافت ظهور داشته باشه در حجیت و آغلائی. این نتیجه نهایی که بخشت نتونه هست و شاید سوال بفهمه که خب این چه راهی داره که بفهمیم حجیت و آقلایی سنه سوال راهش چیه در نقطه فنی در کجا جواب نقطه فرمی می اینه که وقتی به روایات مراجعه میکنیم این از اون ارتکازات و اغلالی خودون چیز زائبی ببینیم میشه بود نبینیم میشه همون سیر اغلال همون فهم اغلال این نقطه چی مثلا اگر این روایاتی فعنه و سقط و رو بزنیم به خبر واحد بله این تعبوده یعنی شما حرف سقطه تعبودن قبول قبولو اما از این به قول احل خبره و به وکی گفت این احل خوب هست مشتهدش داره جز حالا اولیگه احل خوب هست گفتیم من رجوع خوب و رجوع به وکی تازه اینه اون نقطه شد. اون نقطه اینه ای که از مجموعه یا وقتی نگاه بکنیم چیز تازه ای در بیاریم میشه ترمون چیز تازه در میاد؟ یا یه نکته جدیدی مثلا از امام جهاز سوال میکنه راجب به کتب اصحاب ما در آقا امام میگه حد سوب و حاف اینها حق کن بگیم از این رواد اینطور میدرگه هر کتابی که بین اصحاب ما ثابت معروف باشه که این مال اون آغاز میتونی از اشکر هر بودن امام فرمونت هست فرمون فرم. اون کتاب وسائل کتاب کافی کتاب فقید امام فرمونن حق فعنه ها حق کن شما از صحیح نه رو بکنید امام فرمون فعنه ها کن این رو اگر شما تحبه گرفتید رفتید راست انصافت چیز جدیدی در میاد. اما اگر فعنه ها کن رو به اون معنی اشت شما نخیال میکنم اگر این کتابی نه رو اتا باید اجازه داشته باشید سنسره اجازه امام مخواهن اجازه لازم نیستی کافی شما هم نهارو من از کتاب کافی نصده ای پلان چاپ پلان سال پلان صفحه ای پلان نهارو میکنم. این مفراج کنه این فنها یا بگه این کتاب ها کتاب های مسلمی بوده. یعنی یقینا اصحاب کتاب حدیث رو میشناخده هم. ها مسلم میدونستن کتاب حدیث هست. حالا یه نصده از کتاب حدیث در زیر زمین پیدا کرده هست. پنجه سال مخفی کرده. بودن. امام میگن شما نصف مشدوره زیاد ازش نعرم کردن من میدونم شما میشه از این نعرم کنیم پس رو این دقیقه نکته اینه که ما روایت رو چی جور معنا رو کنیم صاحب وزایی یک معنی حدیث اینه که شما متعبد بشین به قبول هر خبری که در کتب مشهور هست توی ناخت ها حد سوبه ها ما ما نه این همون ارجاع بسیده و غلائیست الان به کترام های عرصتو مراجعه میشه نه اصنادیم لیکن که بیم گنابا این نسخه رو ما نبیشیم از یک نسخه ای در سال مثلا دیویست میلادی در ران پیدا کردیم آقا نسخه اینه حالا نسخه از بین رفته یا محدوده و از این نسخه پلانی نحوی کرده از اون نسخه دوم پلانی نحوی کرده ما از اون نسخه ثباب تا ما اصاف رو میریسن تمام خصوص این حد سوبه ها شما میتونید این مطالب رو نسبت بدین با این خصوصیات اگر اینجور گرفتیم این چیز تازه میتونیم اوالایی پس نکته اساسی این است که یک اون روایات رو چجور معنا بکنیم دو ببینیم خلاف قواهد اوالایی خودمون خلاف سیره اوالایی خودمون یا به اصطلاح این روزی هم خلاف استاندارد های علمی اون راه های متعارفی که الان در این اسناد یک شیء نصفت دادن یک می میرن اگر خلاف اون چیز زائبی بود میشه ترد بود اگر خلاف اون نبود اون نمیشه ترد بود مثلا امام ارجال دادن به زراره خب میارم مطلب با بغلاییست شما در یک شهری که هستین بار سوال کام اختلاف شده در آد میارید خلانی خیلی مرد ملایست بیشون مراجع به بغلاییست به لحاظ که خبیر از آشناس میتونه روایت تشخیص بود یا به لحاظ این که خبیر از فتوای درست بود همجورش میکنم داریم یکیش ارجاع به وکیه یکیش ارجاع به است که اشتهاد آوا صحیحه یکیش ارجاع به است که این رساله عملیه درسته و این مشهده و این فقیه فقیه جامعه شرازه و عمل بکنیم اگر ما روایات و مجموعش جور معنیل سریم دقت بکنیم یعنی به عبارت اخرى مجموعه روایاتی یک جور نگرسیم مختلف گرفتیم، و چیه مختلف اقلالی و قوارین مختلف اقلالی گرفتیم. دیگه خب در اینجا شوی تحبات میشونم یا جا چیزا خاصی داره. و به ذهن ما میاد که در روایات چیز ای نیست نقطه جدیدی که بخواهیم در روایات در بیاریم این راجبی این قسمت و هم ما راجبی و نکته هجیه انصافا همچه که از کنیم روایات مختلفه اگر ما ارجاع به سیره دادیم اگر گفتیم به این که این روایات ارجاع به همین فهم اغلاییست است درباره فهم اغلایی در, در اینکه که معمومه چیه انصافا هم اختلافه و کلام ما به نظر اون این که نکته فنیه در حجیت تعبدی عبارت از همون مسئله مصلحت عمومی و تسهیل امر نتیج این میدونه تیوان چنین این بحثش اش یه واژه این بحث نمیشیم مراجعه به نسخه اصل این راجیه به مجموعه روایات که به نظر ما از روایات چیز تازه‌ای غیر از اون سری و قغالی در نمیاد البته روایات همشون در خبر واحد نیستن اصولا ذکر این روایات در این مجال درست نیست ادعیشون در جیت خبر سغن اد... در خبره ادعیشون در مقام اهل خبره ادشون در مقام وکالته بعضیشم ناظر مقام وجیت اقوال ائمه و کلمات ائمه علیهم السلام به خاطر مقام اسمتی که دارن یعنی اصولاً دقت بکنید ممکن است اهل سنت منبار مثال ارجو کنم از سال 150 منبار مثال تا زمان پیمنبر بخوان پول بزن به اصطلاح رابطه پیدا بکنن بگردن به شواهد به روایات که مثلا پسکنیم به خبر واحد عمل بکنیم تا برسیم خودونو بزن رسول الله مثلا سره انسره انسره ام رسوله لیکن درشیه اصلا این نبوده این خود دقیق بکنیم درشیه کلن این نبوده که اگر بخواستن از سال سال و به رسول الله برسن از باب حجیل خبر واحد رس یعنی فر مثلا مالک که سال سال پ تا موبتتر نوشته اون میخواد از زمان و خودش به زمان و صله بررسونه. خب اون هم بعض یک بایون از که دیگه از کهگر و صورتلا. راژ بین این دیگه راه متعارف اینطوری. اما شییه از این بیننه اگر که مامان سادهر از پدرش معرو هم که مقل سه رنگسه است. شیه این راه رو پیش نرف اون چرا که پیشر شیه به آنها می که، خود امام صادق مبین و واقع سنت رسول الله هست. یا تفسیر آیات یا اون که به آیات برمود میشه دقیق برمودی اون نکته اساسی اینه ولی هزا ما با اونها یک تفاوت کلی اونام شاید سیر عمل بکنم به روایات بین که صحابه بقاها مراجعه به خبر میکن اونا چون خبر رو به عنوان تریبه صرف گرفتن اگر خبر مگر اینکه که گفتن بگر که که به مصلحت یعنی به تصویب بشن در خبر بگن تقیق به این خبر جعل بکن میشه معلومی سالا همشون گفته باشن این اقوالشون رو کنید سالا متعرض شده هلانی که بمارکان لذا خوب دقیق بکنید مجموعه یه روایات ما مثل مجموعه یه نیست که اونها ذکر کردن ما اصولا حل قصه رو با بحثه اصولی نکردیم حل مسئله رو با مسئله کلامی کردیم از راه مسئله اسمت اهل بیت و حجیت کلمات اونها از اون را از باب جهت اسمت وارد شدیم نه از باب حجیت خبر که مسئله اصولی این راجع به این قسمت و اصولا, اصولا، مثلا فرض کنیم با مثال یکی اسم ابن هزم تماسوک میکنه برای حججه خبر بین که ما راهی غیر از اخبار به سنت رسول الله نداریم یا بود کتاب و سنت باشه و این کتاب و سنت مجموع غیر نظر نزدشه و لذا تصدیق میکنه که خبری که ایر میه صحتونه عن صحتن عن النبی مصداق ذكره چون این توضیح الان روشن شد اگر ما از این راه وارد بشیم خوب بحث کنیم این ما باید به سنن رسول الله برسیم خوب تبکل روزن و خیلی از این راهی نداره این توش خود خبر در نمی آن. این توش در میاد ما به هر نحوی وصول و اطمینان به سنت بداریم نه ما هر کسی رو مرزا می شه کسایی که می خواهد تبقه. از راهی این که ما سنت داریم چیزهای هست شریعتی داریم راه رسیدن به این شریعت یک یک به اصطلاح یک امر اثباتیه یعنی یک امر طریقی صرفه این مجد این که ملازنه قائل بشیم یا انقلاب تکلیف قاعد بشیم بگیم تکلیف ما اولا به واقعه بود تکلیف اول شد تو دیگیم که این خوب خلاف زواهر عدل است اگر مقدار عدله این مقداره که ما احکام می و با احکام برسیم این اثبات و حجیت طریق نمی‌کنه خوب بگرد نقطه فنی روشن بشه این نمیگه طریق حجته این میگه آی به اولای مضمونایی که مطرح خود حکم شما پیداوکن شما سعی کنم به گفتن ما گه اینکه بگه تکلیف ما عوض شده تکلیف ما اولا به حکم و حالا تکلیف ما به طریق رو خون کلام ظاهر با طریق اثرت می سازه این با طریق اثرت محفوظ کلامی نمی‌سازه رضا دقت بکو به این چیمین استدلالی حتی منافی با سید مرتزا نیست اون هم به برایدی جواب بده که ما مسلم میگونیم احکام داریم بسیار حالا که مسلم میگونیم احکام داریم پس با سبرم هجه هم بسیار تلازم میگیم و دقت دقیقه کنیم مثل خود مالک در کتاب موتک که روایات میاره حدود سی مورد رو به اجماع اهل مدیده تمثب کنیم چون به باید میگه ولدی وجه تو احلال این به بردی حالا یا خود اونا حاکدان چون روایت هم یعنی به بایدتون اخرا اونا هم که ما ممکن است به خوکم برسیم از بیرخه خبر اتقال کنیم به خوکم برسیم پس اون نکته پرنی اینه ولی سا در ما نحنخی هم اگر بگیم از مجموعه این روایات در میاد چه احکامی هست، باید با اون احکام درسی، حالا در یک یفته به کتاب یونس که یفته به زراره، این که محمد محمد مسلم ما باید با اون احکام درسه. این با حرف سید منافق ندارد شو. این واقع رو شما در نظر بگیرید، بعد از اینکه شما التزام به واقع، یعنی ما قطعا مکلف به سنت رسول داشتیم، پس باید حتما به این خبر عمل بکنیم این در نمیاد توش. این نکته فنیش اینه. شما اگر واقع در نظر گرفتید به هر نحوی که اصول به واقع پیدا کردین حجازه نه این که تکلیفتون به طریق سر به طریق سر تکلیف درست نمیشه این راجع به این و اما دلیل چهارم که اجماع باشه و مستند نبی علاوه بر خبره شما چون تقریبه های متعددی شده خدا رحمت کنه استاد باز مختصر میشه ما چون از خیلی مدت اول بحث بنا که معیار بحث کتاب ایشان باشه همین جلد دوی مصباح ایشان ایشان یک ترخیص می‌فرماد البته بحث ها قسمت های خیلی طولانی در مصباح و مرحوم شیخ آورده البته اول ارجماع المعقول من شیخ توصی که شیخ در کتاب قده دعای اجماع کرده نقل اجماع کرد از رجل ثانی از اجماع قبولی این موردشون از اجماع قبولی است که به درد فیلم میخوره حد از سید المتضا و البته مرموم استاد تصاورشون اینه که سید مرتضا قائل بوده خبر واحد وجد است و, و بعد از ایشون هم ادهی مثل برکرون فرزم شکر ابن ادریس مثل مرحوم سید ابن زهره ادهی بعد مرحوم سید مرتضا قائل بودن که خبر واحد وجد نیست شد در سابقه در خلال بحثها اشاره کردن ارز کردن اصولا اینطور نیست که این ذهن ذهنها مشهوره اصولا معروف در مکتب بغداد پیششی عدم همون خبر بود نگاه سید موضوع و اطباعی و اصولا به طور کلی قبل از مکر وقت ما در فرق اسلامی فرق عقلیگره محتضل منکر حجیت بودن از که مذهبین بود اشاعر مصرط حجیت بودن عقلیگره ها منکر حجیت بودن من از این کاره و جید در کلماتشون ابهام امهام دارم اصلا شیخ مفید که استاد سهر و قبل ازشونه. کتاب مختصری چند صفحه از ایشون به ما رسیده در هر به اصول در کتاب کنزر سوائل برموم آمده یعنی ها یا کد رساله اینه نه چارس نفسی خیلی اصول مختصری من میکنم. و که کردیم با شواهدی که ما داریم ظاهرن ایشون قائل به هجیت و است حجیت تعبدی رو امونی کرده هجیت و اما خود سید مرتضا اصلا حجیت رو امونی کرده ولذا ارز کردیم این که ایشون می تواند از سید مرتضا وقت با این عبارت در نیست اصولا این خب به قطع با مراجعه قطعی به کلمات اصحاب نه این کاره احتمالی باشه ما در میان قدم های اصحاب که در فرشیه شیعه بودن یا در حدیث بودن امثال کلیگی صدوب شیخ مفیز سهل منتظا دیگران چیزی رو که آئل باشه به حجیت تعبدی خبر نداریم میگه بیدیم چون من من اصطاد و دیگران عباراتشون دقیقی نیز حالا من اهل سنت داریم اونا نه سر بچم عرض کردم چون یکی مسئله امامت بود مطرح بود یعنی اینا به دنبال این نبودن که بگن مثلا از زمان امام صادق علیه السلام ثقتون ان ثقت در انصر بحث و مساله امامت که به مراتب مقابل بیاد با رسالت یکیش این بود یکی چراخانی که در خلال روایت اشاره شد چون شیعه در علیت بود غالبا احتمالشون بر نسخه ها بیشتر بود تا به نقل خبری که اونا میگفتن اون نقل خبر اونها توی شیعه بود اما اعتماد رو کتاب بیشتر بود چون شیعه اقلیت بودن محدود بود و لذا مثلا با مثلاً ما مهمترین ابوابی رو که مهمترین مثلا قسمتی رو که در باب صلات داریم مهمترین دلیل ما کتاب حریزه مثلا کتاب حریز سن افرد ناردن چهار یحیی غسان زحیقا و خب ببینید یعنی الان اگر روایت حریظ رو از کتاب کافی کتاب وسائط کافی برداری، شاید یک چارون یک چارو کتاب از بر میاد ابواب مهمی صلا بر میاد اعتماد دید. این مطلب به خلاف اهل سنت اهل سنت در همون زمان امام صادق هم روایت مثلا سفیان سوری ممکن 20 نفر 30 نفر 40 نفر ازش بردارن 50 نفرش ازش بردارن و اما بعد از اونه در زمان علمه مترخیر ما دیگه صحبت پنجا نفر و صد نفر نبود از کردم نوشتم در تاریخ هست موجوده مثلا فلان محدث میماید بغداد حدیث میکرم پنجا هزار نفر حاضر باشده هفت سال هزار نفر نوشتم این پنجا هزار نفر از این مثلا می‌دونم که فیلم‌ها صورت دادن است از, از فیلم‌های سر میاد گیرد که زیاد زیادی میشه نمیشدن ترسی کردند که وقتی جمعیت منحل میشود میام مثلا مکان رو اندازه میکردن مثلا این مکان یکی نیست چند در چند برای هر مکانی دو نفر میتونه دو نفر دستور میکند این یعنی آمارشون هم در همین زمان هزار و سه صد سال بعد دهیف میتونیم با تسامح و مسخره بازی نه با آمار دهیف می گفتن در مجلس هزار نفر تنجاه هزار تا. خب ما نداشتیم ما تو شیه اصلا چیزی نداشتیم. دقت میکنیم اصلا همچی چیزی در حال متشریع امکان نداشتیم. ما اونج مجلسی که هزار نفر، حالا هزار. اون چیزی به حضور حضرت رضا (ع) بیشترش هم اهل در خراسان نشابو اون عدد ذکر شده. و اون بحث دیگری است به الا ما تو علمای شیعه مثلا فرزانش آزاد بینید حسن نحلی فرزا که پیر مرزم بود با اون جواب تو که اتاب در من کتاب نحن میکنم این مشکلی بود که دنیای شیعه داشت ولذا ارگاه به کتاب و بحث فهرستی بین اصحاب ما رواج خاص و خودشو پیدا کرد که که جاش اینجا نیست بل از آن نتیجه این شد که اصحاب ما به جای اینکه بیشتر به افتتن ثقاتون مثلا یه نسخه صحیح از کتاب حریزه نسخه صحیح از کتاب ماورث بن عمار فلهج این کتاب ماورث بن عمار فلهج شاید یک سند که نصف حج ما از این کتابه شاید نصف شد بیشتر از نصف این راجع است این خود کتاب ماورث بن عمار ممکن همین مثلا سه تا چهار سرا بیذاره برن می‌کنه مثلا ما ترتیب ما جوری بود که نمیتونست با مسئله حجه خبر عدل ان عدل جور در بیاد هم از امامش اصلا بحث عدل اونجا مطرح نبود هم از امامش دار رسول الله و هم از اصحاب ما تاون وله اهل سنت انصافا اینطوره. اهل سنت تمام حممتشون به خبر و نحو طریقیت بود باسته و خیلی هم سعی داشتن روی این نقطه. که خبر طریق سه باشه اشتهادات اونها رو داخل نکنند. این اباره دیگه از ابو حنیف نارم خب این اولش، چون اون وقت متعارف بود که قیل از قول رسول الله اقوال صحابه رو میکنن که مثلا حال ابن مسعود کذا حال علی کذا در بین اقوال از ابو حنیف که اگر صحابه رسول الله نهارم میکنن قبل دارم مشکل خاله. اما که صحابرا این خودشون هم و نه نارانجا ما موقعل به صحابه نیست شما روش نظرش عبد مسعود نظر ما این نیست ایشون استظهار توی بحث زنا هم چالشیش گفتیم امروز ان شاء الله عرض می‌کنه اینا میون نمیگن این استظهار ایشونه نظر ایشونه ما نظرش ما حجت این بخاطر چی بخاطر اینکه دقیقاً مرز اخلاقیت طریق با غیرطریق روشن بشه متوجه می شون پس اصحاب ما اونی که ما الان شواهد داریم تا اونجایی که ما شواهد داریم هیچ قرینهی موجود نیست که به حجیت خبر سره تب به این معنی که الان ما در ذهن داریم به نهر سنت از سال های ساد و شروع شد چنین چیزی وجود وجود نداشته بله چیزی که بوده بیشتر رجوع به مجموعه خراهد و شواهد بوده بین اصحاب ما در این قرآن و شواهد گاهی اختلاف بوده یک ادهی که خیلی عقلیگره بوده هم اصلا به قرآن شواهد و مراجعه نبید این حساسه اصلا خبر را کلن موجه نبید مثل مرتضا نظام نظرمان شیخ مفید هم مثل مرتضا نیست و مراد این که خبر موجه نیست به اینکه که عمل نمی دانه دانه احکام را از مجموعه شواهد در این را حکم نگاه میکنیم لذا از کردیم این طریقه افراز ما مهمترین نکته پیش اونها قرائن بر ثبوت حکم بود و مهمترین قرائن تلقیه و قبول بین از خواب اینه که سلمانگی اجماع سلمانگی از اون انتظار نگاه برماره. میگه دلیل اونا ال اجماع المون تو مسئله روات هم هست نمیگه ال اشمالش. چون مهم پیش او وجود روایت نیست مهم پیش او ترقیه و قبوله اجماع مرادش ترقیه و قبوله همین که ترقیه و قبول شد این مدرکه بلی ما در بحث اجماع هم توضیحات کافی هست کردیم که مرحوم شیخ میاد بین اجماع و خبر و جمع میکنه شیخ صدور فقط خبر میگه سهل مرتضا فقط اجماع میگه از پرین سه تا مصلک ازازی چون می زمان الان گذشته و دیگه توجه نمیشه صدوق فقط... مثلا شما در هیچ کتاب صدوق اجماع نمیبینی توی یک امالیش توی یک مجیز در نزدن حالا آی نگاه بکنم به نزدن مجیز پنجا دو عمالی تویشون داره املا علی ناشیخ ابو جعفر صدوق حالا محمد علی بن حسین دین امامیه. شاید تو کل تعالifat صد و هایرده کلمه دین ال امامیه که از ایشان ادعیه ادعیات است ها در مناسبات مختلف گفتن شده مواردشون دعوای اجماع اصلا ایشون اهل اجماع نیست درک کردیم. این هست این مطلب هست این اونیکه ایشون از ادله و این به این اجمالی که ایشون می‌فرمایند نیست یک اصحاب ما به حجیت تعبدی خبر همان نکردند بله همونین کسی که این رو مطرح توصیه، شیخ توسیه لیکن شیخ توسیه هم به معنای دقیق عمل نکرد کسی که تقریبا میشه گفت به معنای دقیق تطبیق کرده علامه هست حدود 250 سال بعد شیخ توسیه از اون وقت از خواب مواردی خبت حجید تعبودی خبر شده و الا خود شیخ با این که میکنه با خودشون ادعای اجماع میکنه در کتاب و در آثار فقهیش و آثار حدیثیش نیست این خوب دقت بکنید پس منابراین یک کسانی که حجیت تعبدی رو میگفتن این در بین اصفهان نیست دو کسانی که حجیت رو با قرار شواهد میگفتن این در مشهور قومی ها و بقیدادی ها همینطور لیکن در قوم شواهد بیشتر شواهد طایفه بود اصلا مشایخ قبول کرده در کتاب مشهور هست بیشتر این اضافه میکرد در بغداد به خاطر این فتاح جمع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شواهد کتاب سنن و حتی و قبول رو هم اضافه میکرد تو قبیزان رو نمیگفتن پس اونی که متعارف از ما بود عقضه به خبره با شواهد بود سه امثال سید و این رو هم قبول نداشتن حتی با شواهد شواهد رو قبول میکردن برای اثبات حکم نه برای خبر لذا در این مختل خبر میشد دلیل لغوی نه دلیل لغوی و ما هم انشالله آخر دست ارز نکنیم سریه همون مسلک وسطه خود مسلکه ما هم همینه حجیت خبر با شواهد و انشالله شواهد هم دستبندی کردیم، نتیجه نهایی رو بعد در شواهد عرض می‌کنم. پس اینه که شواهد اجمال قولی من جمع العلماء بله. ادلۀ مطلق عبارات ابهام و اجمال داره و درست نیست اگر مراد حجیت تعبدی است نه چنین چیزی، نه کدامای اصحاب ما هم نداره بله. این مطلب از زمان علام چه عده‌ای جو افتاد، اینجا کار نیست. ادۀ مصرح به صرف اصحاب مزاره فقط به خبر صحیح عمل، میکنه. به موثق عمل نمیکنه. صاحبا اینطوره. و این مطلب درسته شاید ده هستن هم را عمل می اما به موثرا عمل اول این مطلب اجمالا درسته اما این راجع به قدم های اصحاب این تحلیلی که رو پرمونن درست نیست و ما توضیحاتش رو جهاز در بین قدم های اصحاب بین کسانی که خبر رو اجمالا نالا با شواهر قبول می طرف مقابل کسی بود که بیشتر میکرد. بگو با این مطلب قابل قبولی این مطلب اصحاب قبول کنه ما داریم بسیار. حالا چون یه خبر هست ما به خبر کنم از اون این برداشت اصحاب از اصحاب روشن شد اگر تلکیل قبول شده ما هم قبول داریم پس بحث اجماع در حقیقت در کلمات سید ماتزا به عنوان بدیل خبر نقلی شد خوب لقدر کردیم به عنوانی که اگر بحث بحث خواهد کنیم به تلقی داری این سند دقیق گذاشه